حفظ الله من الله الله بس اساسا به سکونی و روایات سکونی بود ماه این آقا طولانی شد برای اینکه تقریبا مجموعه کلمات که حالا گفته شده اونجایی که من دیدم یعنی مشاقی رو شونده کتاب های زیاد نیشه شد سری کردیم اونایی که دنبال تحریق مطلب بودن تحریقات مختلف مطلب بود. تقریبا اوارانشون رو و در دنبال ریشه یابی، مطالبی رو که از سکونی نره شده رسیدیم به دو عبارت اصلی از که کتاب سکونی در زمان خودش در خوفه یعنی این روایات که حالا مثلا امام صادق حدثن یه حبی انحبی این خیلی توسط اصحاب ما نقل نشده مثلا جزوی امامیه مثلا اورده باشه به عبارت دیگر اون چه که ایشون از امام صادق نعب کرده فعلا پیش ما از امام صادق توسط ایشان ثابته حالا خود و حکم اون بخص دیگر نیست. و نکته دیگری هم ارز کردیم ادبیات روایت ایشان منحصره به خود ایشانه اصحاب امامیه ما این روایات رو با این ادبیات ندارن حالا مخواد کتابی ایشون باشه یا نباشه. از کردیم بعد از ایشون هم بزرگان شعن اصحاب ما مثل ابن نبی عمر اینایی که واقعا نقاد حدیث ازشون نقل نکردن و اینجا رسیدید که اون کسی که مسلم کتاب ایشان نقل کرده نوفلیه این پیلی واضحه برای و در میان میراث های اصحاب ما مثل قومی ها و بعد وقتدازی ها قمد نسخه معروف کتاب سرکونی هم همینه و غیر از نسخه نوفلی به عنوان نسخه دیگه برای ما هنوز روشن نیست آن نسخه ما داریم عبدالله الله مغیره اونم زیاد حدیث نقل کرده که یک شعر خاص خودش داره با جوزگان بدرسی رو که اینکه جاش اینجا نیست و روایات عبدالله الله مغیره این احتمال هست که نسخه کتاب سکونی نباشه تو خود کتاب عبدالله الله مغیره بوده خود عبدالله الله مغیره کتابی داشته از اون کتاب نقل شده نه از کتاب سکونی در حال مجموعه ای این دیگه شخص دومی که نسبتاً روایت زیاد داره عبدالله بلوغ مغیر است که اون هم ثابت نیست نسخه باشه بقی هم که معلوم روایت مثل جمیل از دو سه داره فرضاله پنج شش تا این که واضحه که کاملا روایت به صورت و به صورت نسخه نیست و ما توضیح رو چند بار عرض کردیم اعتماد بر یک شخص به عنوان ای کتابش یک ارزش داره اعتماد بر یک شخص به عنوان چند روایت ایشان ارزش دیگری داره این دو تا ها رو ما جدا کردیم در این متون رجالی که خوندیم براتون حاجی نوری دیگران دین اینها فرقی نمیگذارن یعنی دنبال این نیستن ما به نظر رو میاد که اگر بشه کل روایاتی که منصوب به سکونی جمعالی بکنیم یک مقدار رو باز دکیدیم توی نسخه سکونی یه مقدار رو هم بذاریم با عنوان روایات سکونی این مقدار با عنوان کتاب سکونی میشه یه مثل دارم به عنوان روایات فکر میشه این دوستان باید با هم دیگه تفصیل قائل دیدیم که حالا میشه و از کردیم تا بعد از نوفری هم ما خیلی نداریم که از نوفلی آمدن نقل کرده باشن من از از نوفری کم اما بعد از نوفری ابراهیم هاشم مخصوصا چند تا از بزرگان هم که من حالا اجمالا توصیفات شدم اعرض می یکی پسر ایشان علیه نری خب پسر ایشان هم بوده خب روایات مختلف داره از پدری تو را از ستونی برسد کنی یکی ایشان پسر ایشان توصیه شده جلو وقدر که معظم ظاهرا نقل در قم هم توسط همین نسخه پسره یکی صدر عبدالله که مرد بزرگواری جلو و ق عرض کردیم کابی دا آن کتاب و رحمه که کلینی با عنوان خود ایشان هیچ حی از این کتاب رحمه نکرده چند جا مضمونش بالا رویه آورده و خیلی از مطالبش هم از حتی شیخ توصی از کتاب شیخ صدوق مرم نکرده باشه ایشون هم از ابراین اما همون که ایشون احتمالا از کوفه آورده همون نسخه ابراین نهاشه به اختیار ایشون هم رسیده شخصیت دیگری که نسبتاً بازیاد داره از همین ابراین نهاشه محمد بن احمد بن یحیات از اشعری های قوم مرد بزرگواری کتابشون رو اون فكره کتاب بود بزرگ بود اما از نظر ارزشی کتاب دو سه حساب میشه خودش سر است اما غلط بودن تضیه کتاب زیاده اینا شخصیت دیگه از شخصیت دیگیری که از ایشون نام میبرن مریم صفاره اینا همه بر من ابن البته در بعضی از این روایات دار ان عبی اصحاب ابن نوفلی ابو اسحام تصدیقی به نام اسحاق داره اما تصریح معروفش علی بن علیه اما تصدیقی نام اسحاق هم داره در هر حال بوده که ابراهیم و ابو اسحاق و ابو اسماعیل میگفتن در هر حال اگر در جایی هست ابی اسحاق علی نوفلی مراد همین ابراهیم باشه این اصطلاح را در ذهن شما راهتون باشه که ابو اسحاق هم ایشونه این هم شخصیت اسم ایشان یه ای شخصیت دیگری که در قم یام نسبتاً کتاب داره صاحب معروف سفاره. ایشون هم گایی از ایرانه هاشم از نوفری انسترکونی نه. هم. پس معلوم شد که کتابی ای رو که مرحوم ایرانه هاشم به هم ابردن به این مشایف جا افتاد این نقصه رو خود در پتبا و تا اینجایی که ما الان میفهمیم کتاب جا افتاد نه روایت خوب به ذراعه فکر آه. ظاهرن بعدها هم که در بغدار جا افتاد از همه راهه یعنی ما وقتی در مثل شیخ توسی یا نجاشی یا حتی شیخ صدو که تریق داره تو مشیخه نگاه میکنیم نسخه ها به همین برمیاره به اقای نهاشم برمیاره اجازه شیخ توسی و اجازه نجاشی هم که به کتاب نه به روایات اون هم به نسخه اقای نهاشم برمیاره و خیلی بعیده که اینها مثلا از راه مشایف بزرگ بغداد یا کوفه راهی داشتن و ذکر نکردن خیلی بعیده ظاهرا اشتهار کتاب دقیق کنید اشتهار کتاب به عنوان کتاب منشع شاگرده های ابراهی بود حالا اگر ما مثلا فرسونیم ابراهی نهاشه حدود سالهای گریز مثلا چیزید به قوم آمده باشه تا دیویس و شست و هفتاد مثلا مفرات از بعد از دویست و در اگر شما فرض بگیدیم سکرونی کتاب را از ما مساده تا سال های ساله تا سالهای های خیلی شغرف پیدا نمی کنه از بعد از دویست و عنوان کتاب کتاب سفرونی و در ق که بعد همین نسخه هم به برقداد میره این معلومات رو چند بکنیم. در مقابل یک امره واقع شده. او مثلا اولین نظر راج به کتاب سرمومی رو، 100 سال در عدد این تاخیننی 3۸ه و خات معوم ش توع ۲۶ ۲۵ طبقه بعد از ۲۶۵، سخوار هست تعدد مبدالله اینا نرمی کرده ایشون مثلا کلیه هم داره اما نظر نمیده برای گفتن از آثار صحیح هم صادقی یا صادره اما توضیح نمیده اولین توضیح رو که ما راجع به این داریم توضیح است که معروف صدوق داده که لا, لا افتی به ما یعنی فرد رویه سادقون. این در این کتاب که اینجور بردها توضیح مفصلتر رو مرموم شیخ توسی میده در کتاب خوده تا اینجا مسلم بردها یعنی به دوز مثلا فرسی دو قرد خورده ای بعد در قرده هفته محبه اولی نفر که میاد از عباز شیخ توسی استظهار نکنه که شیخ میخواد دیگه سکونی زرست این که ای باید به استزوار محفظه ها رو من بگه اون علم های ما تقلیدن یا واقعا به محفظ مثل محفظ مثل به محفظه ها واقعا اونا هم مثل محفظه ها بودن مردم خویی در زیل قیاسدن وقتی اشاره می‌کنه به عباد شیخ یه از کلام شیخ اینه که مقیار حجیه به خبر از اصحاب ما وساقت راویست و محسن کلامیشان که قیاس ابن کلیو سر است. اگر تو سنید اما سر است طبعا آزگوری خب من خودانو شخصم میشون شما که بازون واضحه انشالله در آساش اینشون از از ایچ فرقیر یا اصولی نبودن این قناعت خودشونه خوب در قطعی ما وقتی میگیم مثلا مرحوم ملحقه اولی کسی که گفت این بود بقیه به طبعی دیشون اسم طبر رو به کار این طبر چه ایل ممکن ایشون هم همی نظر رو داشته نه به طور محققه ایشون هم با بررسی کتاب و همین نتیجه رسیده آقای خوی تقلید از محقق و بالاتر از محققه میشه می پس این مطلبی رو که مربون محققه هلی عبدالله آمد نفسه می این بعضها در کلمات اصحاب معامل خب ازدهی زیادشون این عبارت محقق رو آوردن ازده ایشون حتی عبارت شیخ توسی را مرزن مثل استاد ایشون هم گفتن متحسل از این کلام این است که معیار در حجیت به ساقته بگذر اما خود شیخ توسی نگفتی نه همشون بیروز مفصلن عبارت شیخ توسی را در خود دخوندید ایشون همچه حرفی نداره اصلا که معیار در حجیت به ساقته و سخونی سه غرز یا قیاسه مکلوس رحمست بلکه دو جا دقیقا کندیم ایشون وقتی می به اصحاب ملل فاسد مذاهب فاسده سنیه ها رو حسابشون رو از حساب فتحی ها ها جدا می‌کنه. اون توصیف رو تو فتحی ها ها گفته شد حالا چرا اصحاب ما این توصیف رو هم زدن به عامه این دیگه استظهار اوناس دیگه مرحوم محققی این استظهار دیگه خوندیم عبارت رو اون دیگه ما الان از عبارت محق خود قطع کنی در نین تحبوده نه رسابه عبارت شیخ در کتاب قده میگه لما رو میه انساده در بخش اهل سنت نمیگه چون سه و حسن پس مرمون شیخ در حیقت حجیت خبر این سنیه ها رو مثل ریاست نکلو و سرکونی رو نزده به جهت رسابه زده به جهت تعبود امام صادق اینجور پرموده ما تعبازن عمل بیم و خیلی عجیب به نظر ما که خیلی بازنه خوندیم, چون خوندیم یعنی به نظر ما کامل توی یه تحریه به ببینه ساقت قبوله لعنه هم سقاط اما تو سنیا نداره ببینه لعنه هم سقاط لعنه امام صادق عمله بذاره امس کردن اصطلاحا سیغه است که درد احکام تکلیفی به کار این میشه فعملو به فنزور و الاماره و ها انعریه فعملو به فعملو به به اصطلاح به تحبیر تکلیفی است اما مراد جدی وضعه حکم وضعی است فعملو به اینه کنایه از حجیه این تعبیر میاد که به ظاهر تحبیره مثل بحمل حواظز الواغی فرجی بکی اون هم تحبیره همینطوره ظاهر تعبیرش. تعبیر تکلیفی است اما واقعیت در دنیا قانون و به قول زن قانون گذاری واقعیت قانونی حکم توضیعیه میخواد بگید که مثلا اگر فرژه و فیه های داروات آهازی مقام تقلیف باشه حجیت تسوای مشهد اگر مرادت عذابت باشه حجیت تسوای فقید که بازی شده و اگر مراد, مراد ولایت باشه به اصطلاح وجوب اطاعت بری امر و فقیز که متصدی بشه مراد اینه مراد انعقاد ولاید و صحت ولاید حکم تکلیفی کنه از این مراد پس به نظر ما با این مطلب روشن شد عمل عمل یعنی ما در موردی که خبر باشه و اونی که محل کلام مثلا توی مباحثی که متعلق به شریعت باشه یک لحظه سریع که به خبر استقل در احکام مراجعه کنیم کار این زمین بونا بکنیم با بود من میگه من وقتی میرم تو مسئله کوفه اینقدر علماء اختراضان اکار در شب کوفی دینه اصلا میگه نزدیکی من به دینم شد او که اختراف از خواب در مسئله کوفه امام میخوانده علیه که بها در جالسه بینید نیمیگه به علیه که سره پاسه این جالسه که یه بودن زراره و میخوانم علیه که بها در سره ارجاع به زراره شده ما یعنی هم اما اینکه علیه که تایف یعنی این درسته؟ بله. این در آن که ثواب تنظیم می‌کنه، تشقیق این جزء توقیعات لا یذلیث الاهل و لا که داره. ما ازش هم تو کتابشون نمی‌رسه. معلوم ناهی رو این حدیث خیلی تاکید داشته. از کردم که به من حواسم جمعه خوسرم اون جایی که مرا از زعات فقط در خبر سر بود اگه یه کتمه داره، شم ي... مالو ما. ای ای این کتمه چه نارنجه؟ لایلیز لعلی ممات تشویقی ما یاری هم ناسعات ما، البی نه آرفو به انگلی نه قاضی دهم سر و نه همه لغو ایاگو الیه. حالی مالو دکیله که. <تصفح> اون سعاتی که سعات ما، اون سعاتی که معروفن ما اسوارونه توسطونها بیشیم می‌رسونن. این داره حجور خبره این از کنیم؟ این زیل داره زیلش من داره این در در بر بودن همین تو سبات دولار رو خربودن چرا؟ چرا؟ توجه در زیل نداشتن چرا؟ حالایشون شما توجه بکنیم حالا نایلی تقجیب به زیل نکرد خیلی خوب سلام ما برانیست که مقلبه نایلی باشیم زی که هست که از من دارو بنده که نیست زیل که هست؟ با واضح مقام به کالتی <تصفح> نز کردم <تصفح> یه بحثی شما توی به ساقت دارین حجید خبر سرقه مراد ما از مطیق خبر سرقه که خبر سرقه فقط شعنیتش طریقیت سرقه مراد اینه اما اولدین و ارخ و امنان و قابضه سرنا و نحمل و ایاه و الیه میفید طریقیت سرقه یکی هم تمثل کردن ادهی آنه اسمی مخواب تو بحث خبر بارد شباز اشاره بکنم ايدي هم به اين حديث و نو و این هم باز از امام هادي و امام عسكري امام هادي به امام هر دو خب و اتعه هما. اتعه هما هم به قرينه مراد مقام وکالت شما در خبرثنت ميگه اظهار بخون این آمده به شما خود امام اینجور فرمده شما میگیم به طرف افاعت بکن این خس معلق ما و عطاق ما میخوره که بازی خصوصیت دارن خود سر که آمد از به میده لذا شما در ذهنتون ایچ تو حوضای ما هست نمیخوام بگم اونیش شما ذهنتون مشروعه به این مطالب بیاری کتاب ها خیلیش هم جدید نمیشه شده قدیم نیست مثلا 20 سال قبل میشه. 30 سال هم حالا تو ذهن هستی در روایات زیادی آمده اومده چین نه نه خیلی نه این خب علم گفتن درس بخون بریم این ها رو بگادیان بیان شه طالبذاری ما استفاده بساغت یعنی محقق یعنی <تصفيق> هر هر اثر محقق مرد ما قبول داریم محقق شه قبول داریم انصافاً ما استظهار نمیتونه بکنم از کلام و شکیه معنا رو با مقامه خب نیم سختی مراجعه میکنی ایشون بس بس. توی مبحث حجیت خبر و کارز دو جا خوندیم دیگه شما که داشتی بکنیم خوندیم عبارتی که خونیم که نبود این و باقید این نوچه هستو کنیم بسیار خوبش بس. کار ازیار ازیار اما این تعبود اینجوریست اضافه نزده بکنم حادثتون لا تجربون رو و ان لا تجدون ح ما فییم و ان 5 ما رو ولی عمل به این اینکه سوش به در نمی که اگر به س بود باشه حکمش بیشون رو نباشه سقه مطلب گفته اصلا توی این ابارت که به ساقت در نیمید کی گو؟ خب ممکنه این تعبود به خاطر اجازه رو فرمان اولا چون روحو داره به سقه جمع داره شاید ملاک این تعبود یک چیزی بوده که اینا روایت های علاقه داشتن شاید نه ملاک به ساقت باشه از هرم این نکته خیلی ذریع بوده چون شما شد به شیخ هم تو بحث حجید خبر واحد هم تو بحث تو آرزش بین فتحیه و مجبره و مشبهه و نمی داره مغلله تو تو آرزش بین عامه و بین فتحیه فرگذاشت در هر گزار گفت فتحیه شون سقه هستم این رو دیگر آمه هم شون بفته سقه نه بسه شیخ هم بفته ارزششون میده این دقت رو من تحجیر میکنم چرا, چرا انسان مقالد شهر محقق بشه مثلا اینشان درست نیست خب درست نیست ایشون میه از این عبارت ما میشونیم میلیارد ساخت اصولی در اول جمازی یه خیلی عجیب به نظر من یعنی اینطور نیست که روی تصابت نوشته معلوم میشه یک ارتکار به خیلی عجیبی ارتکار به این عنوان دیده ی بله لب هر دو جا هم گفت اونجایی که فتایید اگر اختص رو به روایت اونم قبول ننو بر. تو چون سمینه یا روایت اختص رو به علی تمام حل و توی که ما روای هنه حلیین یا روای اینجا نیست که به اختصاص به میگه اما در اونجا دارن در فتحیه واقعیه لذا شهر لقف بکنه به جایی که بگه اختصف و مذهبه همچی بود گم نگاه بکنیم به شیه نه به سنی ببینیم این مقبله واید در شیه هست یا نه الان تندیقه بودن روید این قول در شیه هست یا نه لقف بکنیم که کاره نهی دا دخلست خب اینا خبه دبقه های شیخه خب ما چرا بیمون احبا بکنم خراب یک مطلب اون وقت این مشکل دیگه ارز کردیم یعنی ما با یه پیشفرز های الان ما عبارتی هستیم و پیشفرز من تمام مقدمات دارم نفتی ارزادی ما چیجوری معناه بکنیم چرا چین رباده که الان موجود نیستی جا به ما نرسیده اینو چیارش بکنه شیخ این مقدمه رو پ یعنی تعبول آنو میشه با یه خبر زایی در هیچ جنگرمده ما این رو قبول بکنه آجور رو ما با خبر زایی قبول بکنم لذا مرموم همه همه به نظر نمارم میتونه خودم اونا میگن مرال شمیده چون سفرست برمونه همین که شما در اصلاح داره. چون در ما تعبول برمومه تعبول یعنی چه آخر با یه خبر زایی به تعبول درست نمشه چی این حدیث اپنا اگر نبوده چرا شیخ ذکر میکنه اگر بوده کجاست چرا به ما نرسیده بعد یک نقطه که در اینجا با واقعیت ما رو گروه هستیم خب این حدیث رو ظاهرش واضعه بر رباوان علیه قجامتی اقترش ما رو میخوره اون بر رباوان در کوفه چرا این محضب تو خود کوفه ها معروف نشد چرا اهل کوفه و بزرگان کوفه طبقای بعدی شده در مقدادی ها اینها کتاب سکونی رو نرغو نکردن خب چرا اینا نرغو نکردنی کتاب سکونی نکردن؟ میگه تبد میبوند مهما چیزی فرضی یه حالا من یک تصویر می کنم تصویر خودم یه تصویر محفظ و آرخوی و دیگر را با این تصویر مجموعه مطالب رو بینید با هم منسجم شدانی هم عمل کوفه منسجم بشه هم عمل قوم منسجم بشه هم چرا این الان در نیست من اعز کردم که در زمان معلی و مستلام بلکه از زمان طبعا خود امیر المؤمنی دو تا نکته اساسی به امیر المؤمنی نسبت داده شد یکی مصحفی که امیر المصحفی داشته از که من بعض از این آران جمع کردن مجموعه روایت که راجیم مصحف حدیه نه روایت زیاد حدیه پیشتونجا نکنید مثل یکی از تابعین داره که من اومدم مدینه ببینم مصطفی علی پیش کیه کیش این تو روایات ما داره اهل هم ها دارن که پیامیر رو موندین بعد از رحلت رسول خدا فهمیدن از منزه در نمیام تا قرآن رو جمع بکنم این اولین جمع رسمی قرآنه او بردن مصحف در رو بردن بردن مسجد از نظر که مصل گفتن لا اله الا اله الاک تکرار پیدا میگه ما نتیجهش شده یک بحث بحث مصف علیه این غیر از صحیف علیه، در از کتاب و علیه، غیر از کتاب و جامع از جامع بحث به مص علیه غیر صیف علیه این یک بحث که چون ال آن مرگزهگان نمیشه با این بحث نمیشم.یه بحث را چه به نوشار های امیر معی. در اینکه امیر نوشتن بر و الان میدونیم دیگه در موزه ای در بازدادی موزه ای که شورا یه دونه آفریقای خیلی تونسو گیاس یکی از نامه‌های پیغمبر را كتبت اعلی بن علی طالبه که میگن این نامه قدیمه باز محسن دره اونم چعبی باشه پوست خیلی هم داره در حال خلفه یکی از قدیمی‌ترین نامه‌ها اینه در این که امیرالمومنین ز كتبت بوده جوز كتبت ره بوده نوشتار داشتن انواع نوشتار من واضی بحثش نمیخوام بشن چون یه چیز خاص خودشه داره و تا چه زمانی این نوشته هایی که به خط خود علیه بوده، رو موجود بوده و اختیار بوده اینم بحث خودش داره که الان نمیخوام واضح این بحث این اینم اجمالا جای بحث نیست از طریق کتابی رو در کوفه در همین سه سالی که از در کوفه بوده، اینو نسبت میدونم به حضرت به نام یا و سنن و الاحکام یا از سنن و القضای و الاحکام و این کتاب از کردیم تا زمانهای نزدیک که زمان شکل توسی ما از حجود شکل صدوق از وجود کتاب خبر داشتیم. شاید عباسه نجاشی هم باشی از باشی هم بوده. یک کتابی بوده به اسم منصوب برمیرمون. مرموم نجاشی این کتاب رو به ابو رافع نسبت داده. خب دقیق بکنه؟ ابو رافع غلام بوده. بعد پیغمبر آزادش میکنه. اما به پانونی قلام بوده یعنی به اصطلاحشون در جنگ گرفته شده بوده ورده بوده و در واقع مرد شخصیتی بوده بعد تقریبا میشه یک شخصیت مثلا که افتاده که حتی توی خانه پیغمبر رفت و آمد داشته یعنی یک شخصیتی بوده حتی رو که پیغمبر کردن برای خاله ارن عبواز میمونه امول مؤمنی اصلا یعنی عبو رافع واسطه بود و میرفته با, ام... با میمون ص خب بگم یه شخصیت به اسم نهل الوی حساب می شود رافع و زنی هم داشته به نام سلما قصد کرد این زن تقریبا زارنکریس بود در خانه پیغمبر در خانه از زهرا قابله هست در امام حسن امام حسین سلما است در اون قصه قصر دادن از زهرا که مرغ امیرالمومنین ظاهر همین سلما باشه اون اسما بنت اویس کنار شده اون بعیده توی روایت ما هم داره اسماء بنت عمره اسما بنت گفتش زهره همین باشه یه سلمای بنت عمره هم داریم اون نیست که مصعب بن در اون زمان در مکه بود سلمای بنت عمره زن حزره بود و هجرت هم نکرد تو مکه زن از حزره بود خواهرش اسماء بنت عمره زن جعفر بود که شهید شد بعدش زن ابوبکر در زمان اوصل حضرت زهرا بنت زن بود. مثلا خودشون زن خلیفه خیلی بعید بود که این بیاد در مراسم قسل شرکت بکن ظاهرا تو سنیام داره همین سلما باشه زن ابو به نام سلما او کمکتار از تحمیل در مسئله شستنه و قسل عزیز در حالا من نمی خیلی بود این ابو و بچه هاش آباید و علی اینا خیلی دورور امیر المؤمنین بودن شده صحابه بودن که دنبال این ابو را این کتاب رو گاهی به ابو رافع نسبت دادن که نجافی هم صرف داره گاهی هم به حارث احور همدانی حارث ابن عبدالله اهل همدان بود اشعره همدانی که که از اشعر یمنی معروف در گفته بود و یه گفته شده که اساساً همدان بودی ایرانی بود اینم گفته شده اما معروف اینه که همدانی عرب اساساً یمنیه شخصت علمی فعلی حساب بوده ریاضیات بلد بود گاهی هم کتاب رو به ایشان نسبت دادن یک چش بوده اولین یک چشم الحارسل محمدالله الحمدانی اله اول از زیاد اردهی زیاده زفر سنتم تضییفش کنم بخاطر این ارتباط زیادش با امیر معنی گاهی هم به ایشان نسبت این مرغوم نجاشی هم داره لیکن یک نسخه ای که تا های شیخ صدو یا حتی شیخ توسی احتمالاً رسیده بوده اون نسخه سندش به قبیدالله نه عبی رافع برمیشته شیخ توسی اون سند رو داره شیخ توسی اون سندی که برمیره به قبیدالله ظاهرا همین نسخه معروف بوده ظواره اینتون نشون چون ما مراجعه کردیم به کتاب ایزا مال قاضی نعمان ایشون هم ازنی کتاب مستقیم نه رو آزی نعمان از کن رتفش بین کلینی و صدوقه سی سد و و یک و شست و سرافاتشه قیل کلینی بسندو. کتاب موجود بوده سندش هم میانه در کتاب عیزا و نقد میکنه. نقل میفهمید این کتاب و اگر آن میخواد به نجاشی نیستن این که از اجایه بدهیم من رو زفن لدم نجاشی توی ترجمه عبیدالله نبیرات اداره اینجا این مطال به من گفتم بردار شد تا اول کتاب نجاشیه تو حرف اک اوعب نعبی رافه اونجا آمزره اون کتاب اون سر این همین که ا جا میذا آمماده. و نمیدانن چرا نجید ظاهرا نشون نجاشی شاده اعتمادش داشتیم کهتابال اوعبض الله و در هست نج یک کتاب شناس بزرگیه. حالا اگر آیون اهل حال هستن تو اوعب نگاه بکنن تحلیق بزن که این به اول کتاب برگرده این مربوط به اب این ایز الله بن ابي در کتاب نجاشی که نوشته شامل اینه که پیدا بکنه ابن لارشد واقعا شد نجاشی نقطه نظر خاصی داشته من به نظر میاد که این همون کتاب باشه و با شواهد دیگری که بعد پیدا کردیم حالا چرا نجاشی جدا کرده من نمی‌فهمم یک ایده اینه میگسن کتاب علیه مثلا به عنوان کتاب علیه شناخته بود به هر حال خود بحث بکنیم مجموعه بعدها مثلا زیدیه ها از حلیه کتاب علیه نه با این میخوره مثلا زیدیه ها از یک کتابی به نام کتاب زید یا مجموع فقی هم بهش میگن مصنف ابوالزید هم بشه نقل کردن سندش از زید از هزار سجاد از امام حسین علیه اینم از روایاتش میخوره با اونچه که منصوب به امیرالمومنین در کتب اهل سنت هم دی از کتب اهل سنت مطالبی رو از علیه نقل کردن که در مصادر ما نیست مثلا در مسادر ما نقل شده که مثلا بعضی از امور رو به معنی مؤمن نسبت دادن مثلا می گفتن امین رو بگویید مستحق خیلی خوب انسان مخاطره هرچی عمره از خونه خودش احرام ببنده اند من تمام الحج عمره ان طهر من دوریه اهلک احرام از خانه خودش که اذهان اون بیچاره موصادر در مدینه از دل رندوشون خیلی به هم ریخت و گفتن چه یوری است متم عسکفه مثلا احرام بستیم تا اینجا افتادن چه این کاری که خیلی بود از میقات و دهام نیست معلومه که از امیرالمومنین تو نفس داره پس معلومه کده بعد علیه درو گفتن اینها این, این نقلها در کوفه برمیگشته به امیرالمومنین پس خوب دقت بکنید ما در نیمه قرن اول یه کتابی داشتیم بعد ها این کتاب منشأ بحث شد و ارز کردم آن امده اثری که این کتاب هم داشت یعنی امده نکتهی که در این کتاب بود کتاب به صورت مدرن هم بود نجاشی هم داره کتاب و صلا کتاب و صبح کتاب و هشت کتاب هم کتاب که این در درن اول چیزی متعارف نبود اولین کتابی که ما داریم در اهل نه که مدرونه مرتبه کتاب محتقه مالکی سال سال پنجه چونکه اصلا ست سال بعد از کتاب علیه این معلومات رو پلو هم دیگه اون وقت شواهد ما نشون میده هن زمانه ما باقیل یواش شواهد بعدی اشکالات میگم اینا بخواهم بگم بخواهم یک رو سه ماقید میگم یکونت هاون رو یکی بیارم بخواهم رو توضیح میده من برای مختصر میگم یواش شواهد در لطف حقیقی مصاله میاد لیکن احتمالا مثلا محمد بن قیص انعبیجعطر قال قضا علیون احتمالا تمام این ربایات مثلا ما دارید من, داری من ان محمد عن محمد بن قیص انعبیجعطر قال تیر رجید اداکه سمن ما احتمال دارید قال یه قال علیون هر مه شده یا ان محمد عن محمد نقیص انعبیجعطر قال کان امیر المهمی یخو این ظاهرنمو قضایی قضاید از رون اکرام حالا چی بوده چی شده خود کتاب محمد بن غیث چه حالاتی پیدا کرده این <تصفيق> یکی که در مدرسه فیض بن زرد پیچیدگی پیدا کرده محسوسن که نجاشی هم تو محمد بن غیث چهار تو محمد بن غیث سروس کرده از هم هم تو مدت‌ها رو با محمد بن غیث سناوی رو به خاطر اشتراک در کردن ما مختصر صحبت محمد بن یکیه این چهار تا سر دو همچین کلا موجود نیستن بگید یه خب و معلومه که خیلی طولانیه که نشداره و صحبت این هزار سال اشتباهی که پیدا اینا رو حل کردن خیلی کار مشکلی فرنده با اینا باشه یک بعد دیگه چه که ما اولین کسانی ما عرض کردیم یک طرف قصه اینجوری اینجو. از سال 100 به بعد عده‌ای از نوی صحابه کتاب‌های رو به نسبت دادن مثلا اولین کسی که ما داریم در کل دنیای اسلام که راجع به امیر المون از سجاده این زیدی ها نسبت ان زید که اون امر ابن خالد واسدی ان زید، ان سجاد انزل حسین انعبیه امیر المون همین مسند زیدیگران زیدی چاپ دودیان ما شما فقیه هم باش کردیم ما بعد از امام باقر هم داریم اما اینجوری نیست که مسند باشه از امام صادق هم مسند داریم از مسند جعفر هم مسند داریم اما این رسمی از اهل از رضا مسند داریم که با این بحث می‌کنه یعنی منسوب از بنی امیرالمؤمنین بعض مثلا شواهد اون رو در کتاب سننی هم می‌بینید در شواهد دیگه حالا این بحث که مجموعه مسائلی که نسبت داده شده به بنی امیرالمؤمنین چجوریه اینا نشری داره که میگه فقط به شواهد حاضر می‌کنه رد میشه پس بنابر این چون اینجا این توضیح رو عارفين تا نیمه قرن اول که مجموعی نوشتاری به امیر المؤمنین نسبت داده شده در قرن دوم، دو اول قرن اوال قرن دو به اسم زید از قدرشون نقل شده تدریجا تا قرن سوم بوم رضا نقله های متعده داریم داری که اینها مصنده هست مثلا صادق هم ابی هم آبای هم مثلا نگاه می کنیم تقریبا یک تشابهی به این محصنه ها بایی پیدا می کنید. یه اتفاق نظری پیدا می کنیم که این شیعه هست این چند تا جو سشعات و مجموعی شد که وقتی بعدها در بند چهارون یه کتاب دیگه باید بحث باشد کتاب جمعی های یه نقداری اون هم نقره هایی داده به همیستن از الحریه که اون هم با نقل سکونی یا با بعضی نقل‌های دیگه می اسم اون کتاب رو عالما باجا گذاشن جعفریات یا اشعیاات هست دادن یه معاصر اون کتاب در مصر که معاصر با نویسنده کتابه اسمش میشه خود محمد جعفریه اینه قراتنه ال جعفریه خود او جعفریه به نحوه اضافه چند جا توی کتاب ایزا اسمش رو داره کوتوب جعفریه و از سرم شال از این بوده که این مبرون بوده اصلا کتاب و کتاب و صلاح کتاب هست اینجوری مبرون این هم با همون کتاب و مبرون که هرکت کردن رابطه داره آخرین نوشتهایی که در این مجموعه که تهالا به ما رسیده باز با اون نوشتها رابطه داره کتاب دائم الاسلام قاضی نعمان نیماهای دوم قرن چارون سیسای شهسته یا شهسته سیسای و این شخص در کتاب زیادن علیهن داره که ما احتمال میدادیم که از همین کتاب و باشه بعد مراجعه شد به کتابی ایزا تصدیل کرده کتاب و سندی رو هم که داره توسی هم داره این با سند نقل می در کتابی ایزا این سلسله روشن شد برسون پس از میناد میمه های قرم حدود شروع شد تا میمه های قرم این در میان مجموعه آثار ما در سالهای قرن سوم یک مقداری هم در کتاب مجموعه زید مستدرک در کتاب یحیی بن حسین که شیعه اهل سنت به ازلی از, از بله امام الهادی الان هم زیدیا یا من یمن حادریه ایشون در کتاب الافهامش هم که مصادر علیه نظر بیا دقیق مثلا در اینجا در حد صاحب تو ممکن برگردیم تمام این تذکرات که به حد و صاحب را تو حد صاحب تو مصنفه این حد صاحب تو کتاب سکونی هم حد و صاحب القطع چون ما بعد این یک مجموعه روایت رو جمع هم لیست بندی میکنن. مجموعه چیزایی که تا چهارم 4 علیه اختلاف مست نیشن میدیم ما حد و صاحر و قطرم داریم اختلاف زیدی آمده اما خود این یه یه یه نگسته این شو نیست اینجا الالیه نبنه کرده چه از ما در بودن انصافا فی در این بودن فهم شیعه یا سنی یا زیدی بله ما در یه که در باید داریم. الالیه نداریم حد و صاحر حد الا انیتو این الا انیتو توی نسه دیگه هست این شد تاری که جساهر القمر الاهمیه تو پس ما یک مجموعه ای داریم منسوب به امیرالمومنین بچن و خیلی هم ارزش داره اگه ما بخوام مستقلی هم بکنم واقعا کار احیا کار خوبیه دونه دونه رواياتی که در یک باب منسوب به امیرالمومنین یکی درن در فلان اینطور من الان به شما مصادرش گفتم یک مقدارش توی محمد بن قیسه یک مقدارش توی کتاب شکوانیه یک مقدارش توی یک مقدارش تو مصند زیده، یکی مقدارش توی کتاب داعمال اسلامه. تمام تقریبا جعفریاد از این قبیله اینا رو میشه دانه داده در هر موضوعی روایت میشه در بود بگه در اینجا آمده و در اینجا آمده. مثلا اقامتر حدود علالی امام. این عده هم توی که افریاد آمده و تو کتاب دانه. تو این روایتی که ما داری نمازه. ان جماع تواقعه اقامت الحدود و الفيلمی که چهار تا که آقویی هم میفرون سند زعیب سوالا اگر وقت های, های امام های خمساری و امام زعما باشه تا ربون ایشون میگن اقامه حدود بوده امام در جانبی و حدود نشه اما یا خانه هر داره یعنی روشن شد این حالا این جو کار ما این نکته رو حالا شد از قرن اول تا چهارم این تاثیر رو گفتید یه مجموعه است اضافه بر تمام این تمام اینها تو کتب اهل سنت هم زیاد بن هدیه و رو بیان علیه و رو... پس ما یک مجموعه ای الان پیدا کردیم که رو بیان امین علیه احتمالاً بعضیش ازش به صورت روایت باشه بعضیش به صورت همین کتاب بوده همین کتاب غزوات و احکام به دنبال شرعتی اینطوری برخورد میکنه یه تیکیش در دو مستر آمده یه تیکیش در سه مستر آمده یه تیکیش در یه مستر آمده فشل اینه که اگر اگر اینجور شد احتمالاً این روایت ادانه دارد بکنم حادث انزاد حجیدون و حکمون فیما رو فیما رو روشن میشه عواجهاش هم معنای حدیث هم تاریخ حدیث و هم سر اینکه این حدیث چرا فیما بعد محجور شد و اصلا از, از چرخی علمی خارج شد صلى <تصفيق> الله <تصفيق>